این داستان پادشاه سرزمین کوهای تلائی روزی روزگاری بازرگانی بود که دو فرزند داشت، یه پسر و یه دختر. اونا خیلی کوچیک بودن و باید کسی از اونها نگهداری میکرد. بازرگان تمامی دارائیشو یعنی دوتا کشتی پر از مال و تجاره رو به مقصدی فرستاد و در انتظار سود کلان اون نشست. اما خبر رسید که کشتی ها شدند و همه قاله ها از بین رفت. بازرگان که ثروتمند بود فقیر و تنگ دست شد. و همه چیز خودشو حتی یک هکتار زمین از دست داد. یکی از روزها برای اینکه که بدبختی فراموش کنه به مزرهش رفت تا در اون قدم بزنه. همونطور که قدم میزد به آیندهش فکر میکرد. ناگهان با کتوله سبزی روبرو شد. کوتوله از اون دلیل ناراحتیش رو پرسید. بازرگان در جواب گفت اگه میتونی کمکم کنی علتش بهت بگم. کوتوله گفت خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی مشکلتو گفتی منم تونستم راه حلی پیدا کنم. اون وقت بازرگان صفره دلش رو باز کرد و گفت که با غرق شدن کشتیهاش تمام مال و انوالش رو از دست داده و از هستی ساقط شده. کوتوله گفت اینکه قصه نداره اگه به من قول بدی وقتی به خونت برمیگردی اولین کسی که از خونت بیرون میاد بعد از دوازده سال در همین نقطه به من تحویل بدی اون وقت هر قدر که دوست داشته باشی سکه طلا بهت میدم اون فکر کرد سگ من تنها موجودیه که ممکنه چنین کاری بکنه بچه هم هنوز اونقدر بزرگ نشدن که راه برن با این حساب قول داد و قول و قرارش رو در نامه نوشت و برای محکم کاری موم کرد. بعدم راهی خونه شد. وقتی به خونه نزدیک شد، پسر کوچیکش اونو دید زوق زده سندلی رو از جلوش کنار زد تا تاتی کنان به طرف پدر رفت و به زانوی اون چنگ زد. ناگها مرد به یاد آورد که چه قولی داده و فکر کرد که این قول چقدر براش گرون تموم میشه. از طرفی وقتی به صندوقچه سر زد و دید که از طلا خبری نیست فکر کرد کتوله سر به سرش گذاشته و موضوع جدی نیست یک ماه بعد که بازرگان برای فرار از فکرهای قمنگیزش دوباره به مزرعه رفته بود کنار جوی آب کپه بزرگی از سکه های طلا دید به این ترتیب دوباره میتونست از اول تجارتشو شروع کنه همینطورم هم شد و طولی نکشید که از گذشتم ثروتمندتر شد. در این مدت بچه ها بزرگ و بزرگتر شدند، قد کشیدند و باهوش شدند. وقتی پایان سال دوازدهم نزدیک میشد، بازرگان روز به روز بیشتر مضطرب و ناراحت به نظر می رسید. و همه متوجه چهره غمانگیزش شده بودند. یکی از روزها پسر بهش گفت که چرا تا این حد اندوه گینه؟ بازرگان اول چیزی نگفت ولی چون پسر در روزهای بعد هم سوالش رو تکرار کرد مجبور شد واقعیت رو در درمیون بذاره. پدر توضیح داد من نوشتم و قول دادم که وقتی دوازده ساله شدی به یه نفر تحویلت بدم. پسرک گفت پدر جان، سخت نگیر هیچ مشکلی پیش نمیاد او کتوله سیاه نمیتونه بلای سر من بیاره. وقتی ساعت معود فرارسید، پسرک همراه پدرش به مزرعه رفت و درست در همون نقطه قرار منتظر موند. در این لحظه کتوله ظاهر شد. رو کرد به پدرش و گفت اومدی تا به قولت وفا کنی؟ پدر جواب نداد. پسرک سوال کرد تو از جون ما چی میخوای؟ کتوله جواب داد من اومدم تا با پدرت صحبت کنم، نه با تو. پسرک با جسارت گفت تو سر پدرم کلاه گذاشتی از این قرارداد مسخره دست بردار كوتوله جواب داد من از حق و حقوقم نمیگذرم ساعت ساعتها گفتگو کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدند که پسرک با اینکه از كوتوله نفرت داشت مال اون بشه پدر هم باید پسرش رو در یک قایق میگذاشت و اونو در دریا سرنگون میکرد تا پسرک در میان آبهای دریا ناپدید بشه. پدر و پسر با هم ودا کردند. بعد به جایی رفتند که قایق کوچکی در میان جریان آب شناور بود. پسرک شجاعانه سوار اون شد و پدر با پای خودش قایق کوچک و سر کرد. پسرک در میان آبها ناپدید شد. پدر که فکر میکرد فرزندش رو از دست داده راهی خونه شد و زانوی غمبه بغل گرفت اما اون قایق کوچک غرق نشد و خیلی زود به حالت اولش برگشت پسرک شناکنون خودشو به قایق رسوند دوباره سبار شد و با اون راهی دریا روردی شد قایق بعد از مدتی طولانی به ساحلی ناشناخته رسید و در اونجا لنگر انداخت پسرک پیاده شد و در مقابل خود قصر زیبایی دید. به طرف قصر رفت و همین که پا در اون قصر گذاشت در هیده قدرت یک جادوگر قرار گرفت. اون از اتاقی به اتاق دیگه رفت و دید که همه اتاقها غیر از آخری خالیه. در وسط اونم یک ماری حلقه زده. اون در واقع پیرزن جادوگری بود که به شکل مار در اومده بود. مار با خوشحالی گفت ای نجات دهنده من بالاخره آمدی؟ دوازده سال است که چشم راه تو هستم تا بیایی و مرا از این باز نجات دهی؟ جوان گفت چطور میتونم تو رو نجات بدم؟ حالا برایت شرح میدم امشب دوازده مرد با قول و زنجیر به اینجا میان و از تو میپرسند که اینجا چه کار میکنی؟ تو باید ساکت و خاموش باشی و بگذاری هر کاری دلشان خاص بکنند؟ آنها تو را به باد کتک میگیرند و حتی شکنجهت می کنند ولی نباید چیزی بگویی آنها مجبورند ساعت دوازده از اینجا بروند شب بعد هم دوازده نفر و شب سوم بیست و چهار نفر میآیند. گروهی که در شب سوم می آیند سر از تند جدا می کنند اگر مقاومت بکنی و کلمهای بر زبان نیاوری در سومین شب قدرت جادویی آنها از بین می رود و من نجات پیدا می کنم. وقتی هم که نجات پیدا کردم می توانم دوباره تو را زنده کنم. من یک بطری معجون دارم که همه چیز را درمان می کند. اگر قدری از آن را با انگشتانم به بدن تو بمالم دوباره زندگی و سلامت خود را به دست می جوان گفت خب را گفتی به خاطر دارم و کاملا آمادم بهت کمک کنم که از اینجا نجات پیدا کنی. آنچه مار گفته بود مو به مو اتفاق افتاد. مردان آمدند و جوان را زدند ولی او لب تر نکرد. در سومین شب مار به شاهزاده خانم زیبایی تبدیل شد. اون به محض اینکه از شر جادو خلاص شد بطری معجون موجز آسا رو باز کرد و اندکی از اون به بدن جوان مالید. جوان جان تازه پیدا کرد و سالمتر و سرزنده تر از گذشته از جا بلند شد. قصر از شادی و شادمانی آکنده شد چون دیگه از سهر و جادو خبری نبود. خدمتکارا دوباره کار عادی خودشون رو شروع کردند. شاهصد خانم خشنود و زده شده بود و با رغبت به ازدواج به نجات دهنده خودش تنداد. با این ازدواج، زن و شوهر در واقع پادشاه و ملکه سرزمین کوهای طلایی شدند هشت سال به خوشی و شادمانی گذشت و آنها در این سالها صاحب پسری شدند در پایان سال هشتم پادشاه به فکر دیدن پدرش افتاد شوق دیدار پدرش روز به روز در اون بیشتر میشد. به دل ملکه براد شده بود که با رفتن پادشاه اتفاق بدی میافته. به همین دلیلم اصرار داشت جلوی مسافرت پادشاهو بگیره ولی اونقدر او پافشاری کرد که ملکه رضایت داد تا او راهی سفر بشه موقع خداحافظی ملکه به او انگشتری داد و گفت این انگشتر رو بگیر و به انگشتت کن هر وقت آرزو کردی که به جایی بری به اون دست بزن اون وقت بلا فاصله به همون جا میری اما قول بده هرگز از انگشتر نخوای که منو از اینجا به خونه پدرید منتقل کنه. جوان قول داد. حلقه را به انگشتش کرد و از اون خواست که اونو به شهر پدرش برسونه. در یک چشم به هم زدن خودشو در نزدیکی دروازه شهر دید. ولی چون هنوز لباسهای فاخر شاهانه تن داشت، نگهبانا اونو به شهر راه ندادند. کمی از دروازه دور شد و به تپهی رسید که مردی در اون سرگرم چوپانی بود. لباسش رو با اون عوض کرد و بدون اینکه شناخته بشه وارد شهر شد. وقتی نزده پدرش رفت، پدر او رو نشناخت و باور نکرد که او فرزندشه. برای همین انکار کرد که فرزندی داره. پدر حتی گفت زمانی فرزندی داشته ولی فرزندش مرده، اون وقتی دید چوپان بیچاره خسته و گرسنه به نظر میاد ترتیبی داد تا برای تازه وارد کمی غذا تهیه کنند. بعد از غذا چوپان با پدر و مادر خودش شروع به صحبت کرد و گفت من واقعا پسر شمام نشونه چیزی در بدنم سراخ ندارین که منو با اون شناسایی کنین. مادر فریاد زد یادم اومد پسرمون یه خال قرمز زیر بازوی راستش داشت. چوپان فوری آسین خودشو بالا زد و خال قرمز رنگ زیر بازوشو نشون داد. دیگه پدر و مادر شکی نداشتن که او واقعا فرزندشونه. بعد پسر نشست و هر آنچه که اتفاق افتاده بود برای پدر مادرش تعریف کرد و گفت که چطور بعد از سرنگونی کشتی تونسته خودشو نجات بده. بعد گفت که حالا پادشاه سرزمین کوه‌های طلایی و شاهزاده خانمی رو نجات داده و به همسری برگزیده. و پسری هفت ساله داره به خاطر آخرین حرفاش دوباره بهش مشکوک شدند. پدرش با تردید گفت مقام پادشاهی با لباسهای پاره پاره چوپانی جور در نمیاد پسر اینو که شنید ناراحت شد و از کوره در رفت و فراموش کرد که به همسرش چه قولی داده به همین خاطر از انگشترش خواست که همسر و پسرشو فوری اونجا ظاهر کنه ملکه و فرزندش بلا فاصله در اونجا حاضر شدند ملکه در حالی که اشک میریخ شکف کنان پرسید چرا پادشاه به قولی که داده بودی عمل نکردی؟ به زودی همه دوچار مصیبت میشین پادشاه توضیح داد که منظور بدی نداشته و سعی کرد با معذرت خواهی از همسرش دلجویی کنه ملکه به ظاهر کمی آروم گرفت ولی ته قلبش ناراحت و عصبانی بود پادشاه با لباس عادی همسرش همسرشو از شهر بیرون برد و در محووته خارج شهر اونو به منطقهی برد که کشتی کوچکش در اونجا سرنگون شده بود. اینجا بود که به همسرش گفت من خسته شدم کمی اینجا بشین و اجازه بده سرم و روی زانوهات بذارم. چندان طولی نکشید که پادشاه به خواب رفت. وقتی پادشاه خوابید همسرش آهسته حلقه را از انگشتش بیرون آورد و به انگشت خودش کرد. بعد آهسته سر پادشاه و زمین گذاشت. بعد بلند شد زیر بازوی فرزندش گرفت و از حلقه خاست اون دوتا را به سرزمین خودشون ببره. وقتی پادشاه بیدار شد دید نه از همسر و فرزندش خبریه و نه از حلقه. با خودش گفت دیگه نمیتونم نزد پدر مادرم برگردم. لابد فکر میکنن من جادوگرم. هیچ راهی ندارم جز اینکه به سرزمینی برگردم که پادشاهشم. به این ترتیب اون راهی سفر شد. مدتی دراز راه رفت تا به کوهی رسید که پای اون کوه تا قول ایستاده بودن و در مورد ارسیه پدرشون جر و بحث میکردن. وقت قولا اونو دیدن صداش کردن و گفتن آدما اغلب از قولا باهوشترن. بعد ازش خواستند ارسیه اونا رو با ادالت بینشون تقسیم کنه ارسیه شامل یک شمشیر بود که هر کس اونو در دست می و میگفت همه سرها از تن جدا بشن غیر از سر من همین اتفاق میافتاد. دومین ارسیه ردایی بود که هر کس اونو میپوشید پوشید نامرعی میشد. و سبب ارسیه هم یک جفت چکمه بود که اگر کسی اونو به پامی کرد به هر جو آرزو می کرد بیدرنگ می رسید. پادشاه سرزمین کوههای طلایی به قولها گفت: قبل از اینکه درباره این چیزای عجیب و غریبی که می قضاوت کنم باید اونارو امتحان کنم و به ارزششون پی ببرم. دیوار رو بهش دادن. و وقتی پادشاه اونو بتن کرد به یک مگس تبدیل شد و از نظر ناپدید شد اون فوری به حالت اول برگشت و گفت ردا چیز خوبیه حالا شمشیر رو به من بدیم. قولها گفتن نه نمیتونیم شمشیر رو بهت بدیم همه سرها از تن جدا بشه غیر از سر من فوری این کارو میکنه و ما نابود میشیم بعد شمشیر رو با این شرط به او دادند که قدرت اونو بر روی درخت آزمایش کنه پادشاه هم همین کار رو کرد و تنه درخت با ضربه کوچکی به دونیم شد. انگار ضربه به یک نی وارد شده باشه. پس از اون نوبت چکمه ها رسید. اولها دوباره امتنا کردند و گفتند اگر چکمه رو بپا کنی و بخوای تو رو به قله کوه ببره اون وقت ما در پای کوه میمونیم و بهت دسترسی نداریم. پادشاه به اونها قول داد که این کار رو نکنه. اولها هم بهش اجازه دادن چکمه ها ر اما به محض اینکه پادشاه چکمه ها رو بپا کرد، قولی رو که به قول ها داده بود فراموش کرد و فقط زن و بچهش جلوی چشمش مجسم شدند. و در دل با خودش گفت چه خوب بود حالا در قلم رو طلایی بودم. با این آرزو بیدرنگ و در حالی که بقیه ارس و میراث قول رو با خودش داشت از جلوی چشمها محو شد. همین که وارد قصر شد نوای شادی بخش فلوت و ویالون رو شنید که فضای قصر رو آکنده کرده بود. به اون خبر دادن اون روز روز جشن عروسی مجدد همسر پادشاهه. به شدت عصبانی شد و با خودش گفت زن فریب کار منو فریب دادی و از من جدا شدی. حالا هم داری با مرد دیگه ازدواج میکنی؟ بعد ردای قولها رو بتن کرد و بدون اینکه دیده بشه وارد قصر شد. وارد سالن بزرگی شد که اده زیادی از مهمونا اونجا بودند. میزی پر از غذاهای رنگارنگ رنگ هم وسط اتاق بود. همسرشو در میان مهمونا دید که لباسی شاهانه به تنداره و تاجی زرین برسر داشت و روی تخت سلطنتی نشسته بود. اون رفت و بدون اینکه دیده بشه پشت همسرش نشست. همین که تکهی کی کیک و لیوانی شربت جلوی ملکه گذاشتند، او اونها رو برداشت و خورد. همراهان مرتب چیزی از روی میز بر می و به زن پادشاه می‌دادند، ولی ظرف کیک و لیوانهای شربت بیدرنگ خالی می شود. سرانجام همسر پادشاه ترسان و مسترب از جا بلند شد و به طرف اتاق خودش رفت. اون گریه کنون با خودش میگفت چی شده؟ نکنه هنوزم به طور کامل از شر تلسم و جادو خلاص نشدم. پادشاه به صورتش سیلی زد و در حالی که اصلا دیده نمیشد با لحنی پر از اندوه گفت تو آدم فریبکار و متقلبی هستی. برای همین هرگز از شر تلسم و جادو خلاص نمیشی. بعد به شکل اولیه خودش برگشت. به طرف سالن پذیرایی رفت و خطاب به مهمانها گفت مراسم به پایان رسید پادشاه واقعی از سفر برگشته مهمون ها که از سران و پادشاهان و شاهزادگان و مشاوران عالی بودن با خنده و تمسخورون و دست انداختند ولی اون با کلامی کوتاه دوباره بهشون گفت خودتون میرین یا بیرونتون کنم مهمون ها به جای اینکه از سالن مهمونی بیرون برن دورش جمع شدن و سعی کردن بهش حمله کنند ولی پادشاه شمشیر رو در دستش گرفت و گفت همه سرها از تن جدا شود غیر از سر من در یک چشم به هم زدن سر همه از تن جدا شد و روی کف سالن افتاد او هم دوباره صاحب قصر و پادشاه سرزمین های طلایی شد کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی <موسیقی> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام ای سلش نشانی وبلاگ ما m i